شوم ای رحمن اول شد با ایمان شوم ای رحمن اول شد با ایمان شوم ای از فضل و احسان خدای سبحان از غیرت و شهامت دلیران ما همه هستیم لشکری خلافت شوم ای رحمن اول شد با ایمان از فضل و احسان خدای سبحان از غیرت و شهامت دلیران ما همه هستیم لشکری خلافت ای بغدادی با تو بیعت خواهیم کرد خلافت را ما حمایت خواهیم کرد زیری پرچمی حق وحدت خواهیم کرد ما همه هستیم لشکر خلافت ای بغدادی با تو بیعت خواهیم کرد خلافت را ما حمایت خواهیم کرد زیری پرچمی حق وحدت خواهیم کرد ما هم هستیم ز خلافت شومای راهمن اول شد با ایمان از فضل و احسان خدای سبحان از غیرت و شجاعت دلیران ما همه هستیم ز شکر خلافت شومای راهمن اول شد با ایمان از فضل و احسان خدای سبحان از غیرت و شجاعت دلیران ما همه هستیم ز خلافت خدا من مظلومین را شادان کن تدبیری دشمنانت را بیران کن فتحان و سرت نصیبی مومینان کن ما همه هستم زشگری خلافت سرزمین خراسان گشت قبرستان برای دشمنانی دین و ایمان گلگن گل هر صاحبا خونی شهیدان ما همه هستیم لشکر خلافت شام و ایران منور شد با ایمان از فضل و احسان خدای سبحان از غیرت تو شجاعت دید ایران ما همه هستیم ز خلافت شما و ایران منور شد با ایمان از فضل و احسان خدای سبحان از غیرت و شجاعت دید ایران ما همه هستیم ز خلافت آمریکا از خلافت گشپوره ایشان قوانین دموکراسی شد به ایران مسلمانانی عالم گشتن خندان ما همه هستیم ز خلافت خلافت خلافت مسلمانان مبارک، فتوحات اسلام مبارک، تطبیق احکام خدا مبارک